قفه 660 آنجا از نگهبانان پیشگام لشکر پرسید فرمانده این لشکر کیست و در کجاست؟ وقتی او را به حضور فرمانده بردند و او تاج شاهی را بر تارک او در آن میاندید امگراد فورا تشخیص داد که او همان شاه است خود را به زمین انداخت و احترام کرد سپس بخواست من از رفت و گفت سلطان میگوید شما برای چه منظوری به این سرزمین لشکر آورده اید؟ پادشاه پاسخ داد من قیور پادشاه کشور چین هستم و به دنبال دخترم شاهزاده بدورا آمده ام او با قمر و زمان فرزند سلطان شاه زمان پادشاهی جزایر فرزندان خالدان ازدواج کرده است قمر و زمان برای دیدن پدرش شاه زمان به اتفاق شاهزاده بدورا به سفر رفتند به شرط تا اینکه سفر آنها بیش از یک سال طول نکشد از آن تاریخ تا کنون بیش از چندین سال میگذرد. و هنوز از آنها خبری ندارم از شما خواهش دارم اگر از آنها خبری دارید به من که پدر علاقه من و سال هستم خبری دهید تا دلم شاد شود. شاهزاده امگراد از سخنان شاه چین پی برد که او پدر بزرگ اوست آنگاه خود را معرفی کرد و گفت من پسر قمر و زمان هستم و خوشحالم که پدر بزرگ خود را زیارت می کنم پدر بزرگ با حیرت بسیار پرسید چطور شما در کشوری غریب زندگی می امگراد شرح زندگی خود و برادرش و اینکه چگونه قمرالزمان و زمان پدرش به آنها بدبین شد و بقیه داستان را به آگاهی پدر بزرگ رسانید. پدر بزرگ از تندرسته قمرالزمان و زمان و دختر خود شاهزاده بدورا پرسید که پاسخ داده شد حالشان خوب و سالم هستند. آنگاه پادشاه سرزمین چین نوی خود را در آغوش گرفت و او را بوسید پدر بزرگ و نوه عشق شادی از دیدگانشان جاری گردید پدر بزرگ نوه را دلداری داد و گفت دوران اندوه و دوری به سر آمده و من شما نوههای های عزیزم را همراه خود به کشورتان سرزمین فرزندان خالدان برمیگردانم. اینک اشتیاق زیادی برای دیدن اسد نوه دیگرم دارم پادشاه چین دستور داد چادرها را برپا کنند تا سربازان استراحت کنند امگراد نیز خود را به سلطان شهر جادوگران رساند تا او را از ورود شاه چین آگاه سازد. زیرا سلطان با بیتابی در انتظار بود تا بفرماد امگراد چه خبری برای او خواهد آورد. وقتی سلطان از ورود پادشاه نیرومند کشور چین آگاه شد، تعجب کرد که چنین پادشاهی برای چه منظوری با این لشکر بیشمار این راه دور را طی کرده و به این سرزمین آمده است. آنگاه سلطان دستور داد تا تشریفات و تدارکات شایسته جهت پذیرایی پادشاه چین فراهم گردد. در همین اوضا و احوال خبر رسید که لشکر سومی هم با سپاهیان فراوان وارد شهر شدند. هم سلطان از شاهزاده امگراد خواهش کرد ببیند این لشکر متعلق به کیست و به چه منظوری آمده است. شاهزاده امگراد و شاهزاده اسد هر دو به سوی لشکر رفتند و فهمیدند که لشکر سلطان قمن و زمان است که به دست دوی آنها آمده است قمر زمان که از عمل خود پشیمان شده و روزگار تغییر را می تا آنکه امیر ریان که او را آنچنان غمگین می دیده حقیقت را به او می گوید که شاهزادگان را به حلوکت نرسانده، و رها کرده و کشوری را هم که هر دو شاهزاده بعد از رهایی به عنوان مفتد نهایی در نظر گرفته بودند، برای سلطان نام برد این بود که قمر زمان. با آگاهی از محل سکونت فرزندان خود با لشكریانش سفر به آن دیار می گردد پدر رنج کشیده هر دو فرزند را در آغوش گرفت و آنها را بویید و بوسید و اشک از دیدگانش جاری شد و مادتی بدین ترتیب فرزندان خود را در آغوش داشت و متأثر بود چرا مرتکب چنین اشتباهی شده است و از فرزندان خود پوزش میخواست دوشاهزاده خبر ورود پادشاه چین پدر بزرگ خود را به پدر خود دادند و گفتند پادشاه چین به جستجوی شما و شاهزاده بدورا به این پایتخت تخلشگر کشیده است و پسرهای را هم با خودش به همراه آورده است قمر زمان و فرزندانش سوار بر اسب شدند و میخواستند به دیدن پادشاه چین بروند که شنیدند لشکر چهارمی هم از گرد راه رسیده است قمر زمان به فرزندان خود گفت بروید و ببینید این لشکر از کجا میآید؟ دو شاختاد فورا به سرعت با از خود محل چهارمین لشکر رسیدند و با نخست قذیری که در میان لشکر بود صحبت کردند و پرسیدند که این لشکر متعلق به کیست و از کجا میآید و قصدش از آمدن به این کشور چیست نخست پاسخ داد این لشکر متعلق به سرور من سلطان شاه زمان است که در جستجوی فرزندش قمر زمان آمده است و قمر و زمان چندین سال پیش پدر را ترک کرده و بی خبر گذاشته است شما اگر خبری از او دارید به من بگویید و بدانید که سلطان تا ابد ممنون شما خواهد شد دو شاهزاده به نحوستوزی گفتند صبر کنید تا چند دقیقه دیگر برای شما خبر بیاوریم و فوراً رکاب کشیدند و با اسب‌های خود به تاخت به سوی پدر برگشتند وقتی به پدر رسیدند گفتند لشکر سلطان شاه زمان است و خود او هم در میان لشگریانش است قمر و زمان که این سخن رو شنید حیرت کرد و شگفتی و شادمانی از یک سوی و غم و تأصف دوری از سوی دیگر موجب شد که قمر و زمان بیهور شود دوشاستاده با زحمت بسیار توانستند پدر را به حال خود برگردانند و همین که به حال طبیعی خود بازگشت با اسب به سوی محل پدر تاخت و در آنجا فرود آمد و روی پاهای پدر افتاد هیچ منظری دهنده تر از آن قابل تصور نبود که پدر و پسر بعد از سالها دوری و بیخبری یکدیگر را در آغوش گیرند. شاه زمان با نرمی و مهر فراوان گفت پسرم تو با بیندسی مرا ترک کردی و به دست فراموشی سپردی. تو قرار گذاشتی یک سال سفر کنی ولی همین که رفتی همه چیز را هم فراموش کردی و کمترین خبری هم ندادی. قمر و زمان قلبن احساس شرمندگی و پشیمانی میکرد و خود را سرزنش میکرد. سه پادشاه و یک ملکه سه روز میهمان سلطان جادوگران بودند که در دربار سلطنتی مورد پذیرایی شاهانه قرار گرفتند. طول همین سه روز شهستاد اسد با ملک مرجانه عروسی کرد و شاهزاده امگراد با بستانه به خاطر کمکهایی که به شاهزاده اسد کرده بود پیوند زنوشوی بست. و سه پادشاه و یک قلکه به سرزمین های خیر بازگشتند چون پادشاه جادوگران علاقه بسیار به امگراد داشت به سود او از سلطن از کنارگیری کرد و تاج شاهی بر سر امگراد نهاد و او را سلطان امگراد نامیدند او که دارای اختیارات و قدرت کامل بود با استفاده از آن با بودپرستی مبارزه کرد و تمامی بودپرستان را با تدبیرهای سودمند خود به دین اسلام برگردانید. و مردم سراسر سر کشور مسلمان شدند سرگذشت نوردین و مشروقه زیباروی ایرانی شهر بسره سالهای سال پایتخت کشوری بود که به خلافای عرب خراج می پرداخت پادشاهی که زمان خلافت هارون و رشید بر تخت شاهی نشسته بود پسر اموی هارون بود که زینچی نام داشت این پادشاه دو وزیر داشت یکی به نام خاکان و دیگری به نام ساوی، خاکان مردی خوشرو، نیکندیش و نوع دوست بود و همه درباریان و تمام اهالی مملکت او را با جان و دل دوست داشتند در حالی که ساوی وزیری بود ترشرو بدندیش و دارای رفتاری بیعدبانه به همین دلیل هیچ کس او را دوست نداشت این وزیر دائما در فکر این بود که کارهای نیک خاکان را در نزد شاه بد جلوه دهد پادشاه با دو وزیر خود درباره همسر قانونی مرد و تفاوتی که چنین همسری با مشوقه مرد دارد گفتگو گو می یکی از وزرا معتقد بود که مرد به خاطر آینده‌نگری اجتماعی از خانواده بزرگ زن اختیار می در حالی که مشوقه را به دلخواه خود و برای ارزای تمایلات نفسانی خویش و بدون هیچ ملاحظات خانوادگی و مسلحتی از بین کنیزفان زیبایی که خرید و فروش میشوند انتخاب میکند. خاقان ضمن تایید آن نظر میگفت اگر مشروقه مرد علاوه بر زیبایی خوش آگاه و آینده نگر و باهنر هم باشد موجب میشود که مرد بعد از کار خسته کننده روز با یار دلخواه خود خوشنود شود و آسایش خود را به دست آورد. پادشاه با این نظر بسیار موافق بود. وقاغن که به اینجا رسید، شاه از خاکان خواست تا چنین مشروقه با و صاحب جمالی را از هر کجایی که میشود برای او فراهم آورد. سائوی که همیشه نسبت به خاکان حسادت می‌ورزید، این بار هم مخالفت خود را اعلام کرد و گفت: بسیار مشکل میتوان چنین مشروقه را به دست آورد و اگر هم به دست آید، از لازم خواهد بود ده هزار سکه طلا به این خاطر پرداخت شود. شاه اظهار داشت البته پرداخت چنین رقمی برای شما ها سنگین خواهد بود ولی نه برای من آنگاه بلافاصله به خزانه‌دار دستور داد ده هزار سکه طلا در اختیار خاکان بگذارند و خزانه‌دار هم این مبلغ را به خانی خاکان برد خاکان به دست داد و ستد کنیزان زیبا سفارش کرد تا هرچه زودتر کنیززی بارویی با آن مشخصات برای او پیدا کنند درباریان هم به خاطر آمد وزیر و هم به خودشان روزی نمی گذشت که کنیزک زیبارویی را به وزیر معرفی نکنند و تمام کوشش خود را در این راه کار بردند اما هر بار وزیر ایرادی از آنها می میگرفت تا اینکه در یکی از روزها که وزیر میخواست بر اسب خود سوار شود یکی از درباریان نزد او آمد و گفت دیروز یک بازرگان ایرانی به این شهر وارد شده و بهترین و زیباترین کنیزکان را در اختیار دارد و تمام صفات و خصوصیاتی را که مورد نظر شماست در او جمع است خلاصه روزگار تا به امروز چنین لعبتی را به خود ندیده است خاكان بسیار خوشنود شد و از خاست این بانوی بیمانند را به خانه او ببرد زیرا او باید به حضور سلطان میرفت وقتی خاکان به خانه برگشت آنچنان لعبت زیبا و فکر انگیزی را در خانه دید که در خواب هم ندیده بود این روی ماه پیکر را ماهروی ایرانی مینامیدن و واقعا هم سزاوار چنین نامی بود زیرا فوقلاده هوشمند و آگاه و شیرین سخن بود و در دل مانند نداشت و کسی بود که مجموع صفات نیکوی او از حد انتظار وزیر هم بالاتر بود وزیر او را پسندید و بهای او را از بازرگانان جویا شد بازرگان پاسخ داد کمترین بهایی را که میتوانم بپذیرم ده هزار سکیه طلا است، که در واقع آن هم همهنزینه است که تا خنون برای تعلیم و تربیت و پرورش او پرداختم او را وقتی دختر خورد سالی بود خریدم و چون در نظر داشتم او را برای همسری شاه تربیت کنم بنابراین از نخستین روز تمام اوقات خود را صرف تربیت و آموزش او کردم و بهترین استادان و مربیان را برگزیدم و از پرداخت هیچ حزینهی در راه او دریغ نکردم این بانوی جوان زیبا از کودکی به آموختن دانش‌ها پرداخته و با انواع سازهای موسیقی آشنایی دارد در رخص آواز و ترانه سرامد روزگار است در نگارش و دبیری آگاهتر از بزرگتری نویسندگان است و در سرعت انتقال نکته‌سنجی سنجی و سخنوری و لطیف گویی بیمانند است در هر دانشی بهره کافی دارد زیبایی اندام و اعضای بدن او مانند ندارد دانایی و حاضر جوابی او آگاهترین گاهرترین مردان را به زانو در می آورد. هر کتابی که تصور کنید او آن را خوانده است به سخن ساده در روزگار ما همتایی ندارد وزیر بازرگان گفت من این ماهرو را برای پادشاه انتخاب کردم و اگر ممکن است تخفیفی در قیمت آن بدهید بازرگان گفت آنچه به شما گفتم فقط هزینه تحصیل و تربیت و پرورش او بوده و اضافه بر آن چیزی نخواستم من میتوانم به عنوان هدیه گرانبهایی او را به شاه تقدیم کنم ولی اگر بخواهید قیمتی پرداخت کنید فقط پولی را که در راه آموزش و پرورش او هزینه کرده‌ام از شما انتظار دارم می می‌دهم در مقابل پولی که ساتن خواهند پرداخت از این معامله بسیار خوشنود و بحر من خواهند شد وزیر پول را پرداخت اما بازرگان به وزیر گفت به این نکته توجه کنید که چون این با نوراه طولانی و سختی را تا این شرطه کرده خسته است و آفتاب هم تا حدودی رنگ پوستش را تغییر داده چون که دو هفته استراحت کند و چند بار هم به گرما برود و بعد هم لباس زیبندی برسوق شیوه کشور خودتان بر او بپوشانید، آنگاه به مراتب زیباتر و تنازتر هم خواهد شد و با حالت شاداب می او را به حضور سلطان انزانی دارید وزیر از توضیحات بازرگان تشکر کرد. و گفت به همین ترتیب هم رفتار خواهد کرد بعد از رفتن بازرگان وزیر با ماهرو به صحبت پرداخت و گفت شما شایستگی مصاحبت با پادشاه هستید و زندگی درخواهی را از این پس آغاز خواهی کرد ولی من پسری دارم که قدر حوستران و لاعبالی و بازیگوش است. خواستم قبل این مطلب را به شما گفته باشم ماهرو هم از این تذکر تشکر کرد و وزیر هم خداحافظی کرد و رفت نام پسر وزیر نورالدین بود او جوانی خوش سیما و خوش بیان و جسور بود که دختران را به سوی خود می و با زبانی مردم را به خود علاقه مرد می ساخت در همان لحظه نخواست که ماهروی ایرانی را دید به او دل باخته بود و در عشق او سر از پا نمی شنا و تصمیم گرفت به هر قیمتی شده او را از چنگ پادشاه درآورد. آورد از سوی دیگر ماهرو هم از بدش نمی آمد. و به خود می گفت وزیر محبت کرده و من را برای هم پادشاه خریداری کرده است ولی اگر برای پسرش در نظر می گرفت به مراتب خوشنودتر می شدم آدمی نبود که در معاشرت با زنان نیک منظر عقب نشینی کند و همه اوقات را در مصاحبت با مادر و ماهروی ایرانی می گذرانید زیرا وزیر ماهرو را به همسرش سپرده بود که او را پذیرایی و مراقبت کند و همسر وزیر هم برای اینکه که فرمان و مهر خود را به شوهر ثابت کند نهایت جدیت را به کار می برد و اگر مادر نورالدین پسرش را مجبور نمی کرد، او هرگز از خانه خارج نمی شد و در کنار آنها به گفت شنود و سخنوری می پرداخت مادرش به نورالدین می گفت برای جوانی در سندو سال تو پسندیده نیست که اوقات خود را در میان بانوان بگذراند قبلی هم به فکر آموختن و یاد گرفتن باش تا با افزایش سطح دانش و معلومات خود شایستگی کافی به دست آوری و مانند پدر خود مقام بلندپایی را در آینده احراز کنی همسر وزیر دستور داد گرمابه را برای ماهروی ایرانی آماده و گرم کنند و چندین کنیزش را ممور خدمت به او کرد و از آنها خواست تا در خدمت ماهرو در گرمابه او را یاری کنند و سپس بهتری لباس‌های زیبنده را به او پوشانید. همین که ماهرو از گرمابه بیرون آمد و با لباس‌های گرانبها آراسته گردید، هزاران بار بر زیبایی و دلربایی او افسوده شد، به طوری که همسر وزیر زیبایی او را در دلش تصنین کرد. ماهرو از همسر وزیر سپاسگزاری کرد و گفت: این لباس‌هایی که شما برای من تهیه کردید، بنا به گفته‌ی ندیمه‌های شما مرا زیباتر ساخته است. آیا شما هم به آنها هم عقیده هستید؟ همسر وزیر پاسختاد دخترم من با شادی فراوان می گویم که من زیباتر از تو کسی را در عمر خود ندیدم به خصوص که بعد از استراحت چند روزه و استهمام زیبایی تو چندین برابر گشته است آنگاه همسر وزیر خودش به ما برفت و به تن از ندیم ها سفارش کرد اگر نورالدین خواست به اتاق مخصوص روی ایرانی داخل شود مانع او شوید و بگویید بانوی ما چنین دستور داده است نورالدین از ندیمهها پرسید مادرم کجا رفته است آنها پاسخ دادند در گرمابه است سپس سراغ ماهرو را گرفت و آنها گفتند در اتاق خودش تنها است وقتی نورالدین خواست داخل اتاق بانوی زیبا گردد ها مانع شدند او هر دو ندیمه را به زور در اتاق خلوت انداخت و در آن را هم از پشت قفل کرد و به سراغ ماهرو رفت ندیمه های دیگر گریان و کنان وارد گرما شدند و بانوی خود را از ماجرا آگاه کردند. همسر وزیر فورا لباس پوشید و با حالت گریه و خود را به اتاق ماهرو رسانید اما در این فاصل نورالدین فرار کرده بود ماهروی ایرانی از دیدن همسر وزیر آن هم در آن حالت شگفت زده گفت چطور شما به این زودی از گرما خارج شدید همسر وزیر با فریاد پاسخ داد میپرسید چطور حال بعد از آن که در اتاق با نورالدین خلوت کردی، حالا خون سردی و می‌پرسی چه اتفاقی رخ داده است؟ یا می دانی با این رفتار چه بلای بزرگی بر سر نورالدین و یا بر سر من خواهد آمد؟ ماهروی ایرانی پاسخ داد: بانوی من، فکر نمی‌کنم نورالدین عملی کرده باشد که سبب این همه نگرانی برای شما شود. همسر وزیر گفت: اهمیت موضوع اینجاست که وزیر شما را برای سلطان در نظر گرفته است. مگر شوهرم این موضوع را به شما نگفته بود ماهروی ایرانی پاسخ داد چرا من این نكته را فراموش نکردم نورالدین نزد من آمد و فقط به من گفت که وزیر به او گفته است تصمیم خود را عوض کرده و میخواهد مرا برای نورالدین نگه دارد و برای سلطان تدبیر دیگری خواهد اندیشید من هم خیلی طبیعی سخن او را پذیرفتم زیرا به عنوان یک ذر خرید از کدکی فرمان فرمانبرداری را آموختهام و اجازه مقاومت و یا مخالفت با مالکی خود را هرگز به خود نمیدادم. دادم تو دیگر تماس روزانه و گفت و شنید با نورالدین و آزادی صحبت با او مرا به سوی او کشانیده و فکر سلطان را از سر من بیرون رانده و زندگی با نورالدین را در سراسر و سر عمرم بزرگترین خوشبختی برای خود می شناسم همسر وزیر با ناراحتی از سخنان ماهرو نالهی کرد و گفت چه بدبختی بزرگی پسر من جوان هوسران و خوشگذران است و با شیدن زبانی خود دخترها را رام میکند سخنان او را نباید جدی بگیری او تو را فریب داده است آنچه گفته است حقیقت ندارد این جوان خود خودپرست با این عمل خود همه را به بدبختی و تباهی میکشاند التماس زاری های من و یا وزیر در برابر خشم سلطان مخاطر عمل نورالدین تأثیری نخواهد داشت و ما را نخواهد بخشید اگر وزیر هم من از سخنان نورالدین و دروغ او آگاه شود او را خواهد کش. بعد از این سخنان همسر وزیر به گریه افتاد و از نزد ماهرو به اتاق خود رفت اندکی بعد وزیر وارد شد و از گریه و همسرش تعجب کرد و علت آن را پرسید او همچنان زاری می کرد. سرانجام وزیر پرسش خود را تکرار کرد، تا آنکه همسرش به او گفت نورالدین به ماهروی ایرانی گفته است تو تغییر عقیده داده ای؟ و او را به نورالدین هدیه کرده ای و مہرو هم حرف او را باور کرده و از این تصمیم بسیار خوش است وزیر از عمل نورالدین خشمین شد ولی همسرش به او گفت من هیچ دخالتی در این ماجرا نخواهم کرد هر گونه مسلحت می دانی نورالدین را مجازات کن وزیر گفت سلطان خانمان ما را برباز خواهد داد و همه ما را نابود خواهد ساخت نمیدانم این جوان نادان چرا چنین سخنی گفته است حلّطری وزیر که شوهر را بسیار آن نارام و نگران می‌دید، او را دلداری می‌داد و می‌گفت: آنقدر ناراحت نباش، من جواهراتم را می‌فروشم و ده هزار سکه طلای سلطان را به او پس می‌دهم و می‌گویی نتوانستی کنیزی با آن اوصاف برای سلطان پیدا کنی. وزیر پاسخ داد: نگرانی من بیشتر از روی سؤی وزیر است که رسوب به من حسادت می‌ورزد و این فرصت را غنیلت می‌شمارد و شاه را از این واقعه آگاه می‌سازد. آن وقت شاه همه مارانا نابود خواهد کرد و در آتش خشم خود خواهد سوزاند. می این وزیر حسود چه سخنان تحریک خواهد گفت. همسر وزیر پاسخ داد. همه اینها که گفتی صحیح. ولی وزیر بدندیر و هیچ دیگری از این قضیه در داخل خانه ما خبر ندارد. بر فرض محال هم که وزیر بدندیر دانسته باشد، ماهروی ایرانی را به خانه آورده ای، و به سلطان هم بگوید که تو چنیز شایستگی شاه را یافته ای تازه میتوانی در برابر پرسش شاه بگویی صفات مورد پسند شاه را نداشت و فقط زیبایی ظاهری دارد و شایستگی عرض کردن به شما را نداشته است و بازرگان ایرانی به او دروغ گفته آنگاه شاه سخنانت را میپذیرد چون به تو اعتماد دارد و با این ترتیب وزیر بدنهاد که تیرش به سنگ میخورد ناراحت خواهد شد بنابراین باش و حرف ما گوش کن و درباریان را احضار کن و به آنها بگو کنیزی را که خریده ای فاقد هنرمندی و سایر خصوصیات دلخواه سلطان است و آنها میتوانند دنبال کنیزی با آن خصوصیات بروند وزیر سخنان همسرش آرامش پیدا کرد و تصمیم گرفت به همان شیوه رفتار کند اما نسبت به نورالدین همچنان خشت این بود آن را نورالدین در برابر پدر ظاهر نگشت و از شهر بیرون رفت و در باقی خود را پنهان کرد. آخر شب به خانه آمد و وقتی وزیر به بستر رفت، ندیمه های مادرش با آرامی در خانه را باز کردند و او هم بی سر و صدا به اتاق خود رفت و خوابید. و صبح زود هم قبل از آنکه وزیر از بستر برخیزد، از خانه خارج شد و به همین ترتیب چندین روز خود را از چشم در پنهان نگه می‌داشت. خدمتکاران خانه و ندیمه ها به او گفته بودند اگر وزیر تو را ببیند، خواهد کشت. و هنوز نسبت به تو خشبین است همسر وزیر می نورالدین فقط شبها آن هم بعد از خوابیدن وزیر به خانه می آید و هنوز جرأت نکرده بود از وزیر درخواست کند نورالدین را مورد بخشش قرار دهد تا اینکه روزی به وزیر گفت من فکر به خاطرم رسیده است و تصور می تو تونیز آن را بپسندی برای آنکه نورالدین نوردین شود و بداند که گناه بزرگی مرزکیب شده است تو ر نشان بده که میخوای او را به قتل برسانی در این میان من پادرمیانی میکنم و از تو اف نورالدین را درخواست خواهم کرد. آن وقت تو نیز به خاطر من او را خواهی بخشید وزیر هم شبدی در پشت در خانه خنجر به دست پنهان شد همین که نروین قدم به درون خانه گذاشت به او حملهور شد و خنجر را بالا برد که در قلب او فرو داورد در همین لحظه همسر وزیر فریاد کشید چه کار فرزند خود را به حلکت می میرسانی و فورا شیونكنان دست وزیر را گرفت نورالدین که بسیار ترسیده بود و بر خود میلرزید بر روی پاهای وزیر افتاد و سمیمانه عذر خواهی کرد وزیر گفت نورالدین فقط به خاطر مادرت تو را نمیکشم و میبخشم اگر مادر تو مداخله نکرده بود به درخواست تو ترتیب اثری نمیدادم من ماهروی ایرانی را به تو هدیه کنم ولی به این شرط که با چشم یک زر خرید به او نگاه نکنی او را هم سر خود بدانی و همچنین حق نداری او را طلاق بدهی و یا به فروش رسانی و باید همکنون سوگند یاد کنی که به ده این تعهدات وفادار خواهی ماند و از این لحظه مهروی ایرانی برده و زر خریده هیچ کس نخواهد بود. زیرا این بانوی دانش و آگاه می در زندگی زن وشویی تو باشد و با عقل و زیرکی و دانایی خود تون رویها و گری های تو را تعدیل کند. و از نابودی تو جلوگیری نماید نورالدین که انتظار نداشت وزیر این همه بزرگواری محبت به او نشان دهد هزاران بار از او سپاس گذاری کرد قول داد همان گونه که پدر از او خواسته است عمل کند بر این وزیر و نوردین و ماهروی ایرانی و همسر وزیر از این تدبیر خوشنود شدند. وزیر که دیگر انتظار نداشت سلطان در این بار پرسشی از او بنماید. با وجود این خودش درباره دشواری‌های یافتن معشوقه دلخواه سلطان مرثبًا تذکراتی می‌داد اما وزیر دیگر با وجودی که کم و بیش بوی برده بود باز هم خاکان آنقدر مورد احترام و اعتقاد سلطان بود که جرأت فاش ساختن مطلب را به او نداشت بیش از یک سال از این ماجرا گذشت و همه آبها از آسیا ریخته بود و این قضیه همچنان در پرده اسرار پنهان بود روزی از روزها که وزیر خاکان در گرما بود به خاطر کاری مهم و فوری ناچار شد با همان گرما و رطوبت بدن خیس از گرما بیرون بیاید و در برابر هوای سرد دچار زاتوریه و تب شدید گردد وزیر بستری شد و مدتها در بستر بیماری رنج می‌برد سرانجام پزشکان از درمان او عاجز ماندند و واپسیندن زندگی فرار رسید و نورالدین را که دائما در کنار او بود صدا زد و گفت فرزندم این لحظه ای آخر زندگی من است. پزشکان نتوانستند جلوی سرفه را بگیرند. من با لوت پروردگار ثروت بی حسابی اندوخته ام، ولی با آن همه ثروت نتوانستم از مرگ خود جلوگیری کنم. خواستم یادآوری کنم تو به من قول دادی همسرت را تا پایان عمر نگهداری و خلاف عهد خود رفتار نکنی. با اطمینان به تو من خوشنود و راحت از این دنیا میروم. انگاه بعد از چند لحظه جان به جان آفرین تسلیم کرد. و دار فانی را ودا گفت تمام اهالی شهر و خانواده وزیر و سلطان از درگذشت مرد با تدبیر و پرهیزگاری چون وزیر عشق ریختند و سلطان وزیر خردمند و روشنگری را از دست داده بود مردم پشتیبان نیکوکار و خدمتگذاری را از دست داده بودند مراسم خاص وزیر در نهایت شکوه و تشریفات شاهانه با حضور عمرا و بزرگان کشور انجام شد و با از آنها برای حمل جنازه او بر یک یک پیش می‌گرفتند. غنی و فقیر در غم جانسوز مرگ وزیر سلطواری کردند. نورالدین مدتها از غم مرگ پدر سلطان بود و خود را در منزل زندانی کرده بود تا اینکه یکی از دوستان صمیمیش به دیدن او رفت و به او گفت هر کسی در زندگی پدرش را از دست می‌دهد رسب آن است که مراسمی را به جا می آورند و تو در مورد پدرت همه وظایفی را که یک فرزند خوب باید انجام دهد انجام داده ای و دیگر نباید با زندگی و امور روزانه آن قهر کنی و کنار بگیری باید همان خوشویی و معاشرت را با دوستانت دنبال کنی و به زندگی عادی برگردی نورالدین هر روز تمام رفقا را به خانه خود مهمان می کرد و از آنها پذیرایی شاهانه به عمل می آورد و با انواع خوراکی ها و شراب های ناب آنها را سرگرم کرد. و از ماهروی ایرانی هم خواسته بود تدارک لازم ببیند و به حد افراد همه گونه وسایل عش و خوشگذرانی برای دوستان فراهم می‌آورد. بانوی زیبای مهربان، انسانی متفکر و نگر بود. به رودین گفت: درست است که پدر تو ثروت بسیاری برای تو باقی گذاشته، ولی اگر به این ترتیب هر روز از این ثروت استفاده کنی، تولی نخواهد کشید که به پایان می رسد. زیرا تو درآمد پدر را نداری. ولی با همان سخاوتمندی و میهمان نوازی او زندگی میکنی. نورالدین کمترین اعتنایی به اندرس‌های او نمیداد امروز اگر میهمان نورالدین از خانه او میرفت فردا چندین نفر دیگر به جای او دور سفره او گرد می‌آمدند. رفته رفته پای دوستان به خانه نورالدین باز شد و ده دوست صمیمی او هر شب میهمان او بودند و او هم سخاوتمندان پول و ثروت بادآورده را برای آنها خرج میکرد و حشمت به هر کدام از آنها هم حدیه ی پیشکش می کرد.